دار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر ولک هوادارت چون بلدی بخندی و چشم با دل ببازید با اش دل ببندید ازبا که دلم سبزه پیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اشکا که قلب سبز است چیزی توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فرداب. سلام سلام سلام به همگی حال احوالتون چطوره خوبی خوشین؟ سلامتین؟ این رادیو پس شماری شماره 978 امروز شنبه 17 بهمن ماه 1394 هم با شما ایم یک هفته دیگه آغاز شد یک رادیو پاسوردهای دیگه برو بری حالا حالا حالا بیا بیا حال ها ها اما بریم ببینیم که شاعر رادیو پسورده چی گفته این هفته؟ شاعر رادیو پسورده این هفته سروده که با وعده و حرف و شعار خاگینه تهچین شده با مردباد و زندباد و زای ما همچین شده با مشت محکم میزنیم ما در دهان این و آن از بس که آپرکات زدیم این دست ما سنگین شده با یک شعار گلدرشت بعضی به مجلس میروند با وعده های سرسری آرایشان تضمین شده روی در و دیوار شهر پرگشته از پند و شعار، از بحر زن لاک و صدف، چون پوششی تاین شده، هر جا شعار آمد شعور از دور خارج گشت و رفت، گر این یکی هستان یکی پنهان زدست این شده. با تشکر از شاعر شعار زدمون، این هفته نه که کلن خب تو مملکت ما در دیوار شعار می ریزه و اصولا این شعار هاست که نظام مقدس جمهوری اسلامی را زنده نگه داشته است خب میخوام یه سریع بزنیم به دنیای پرشور و نچندان سرشار از شعور شعار خیلی چی شد اصلا قاتفاتی شد و میخوایم بریم ببینیم که این شعار شعار که میگن چیه و شعار زدگی رو بررسی کنیم متوجه بشیم چیه که باعث میشه انقدر شعار و شعار و بعضیا اینقدر جواب میده توی مملکت خلاصه که باشید و باشیم و باشند دوره هم یکم شعار بدیم ببینیم چی کاسپ میشیم برو بریم وضعیت پوشاک و لباس های برند توی ایران دوستان عزیزان خانم و آقایون یک داستان پیچیده‌ایه که حتی اون برندباز های این کارش همگاهی سر از اشتر نمیارن الان شما به صحبت های این تولید کننده پوشاک ایرانی گوش کنین که خیلی شیک و تمیز مارک رو که از گرونترین برند های لباس توی یکی از گرونترین برندهای لباس توی دنیا داره روی کاراش میزنه مارکو همین کارا با قیمت‌های نجومی توی بوتیک‌های بالاشهر فروخته میشه و میره. اینا گوش کنید. بله همشون ایرانی. الان همین کارو وقتی این مارک زده نمیشه روش مشتری از ما خرید نمیکنه. این یه مارک قشنگ اروپایی زده اینجا. رست. همین کارو می‌بینید به خاطر اینکه میگم همون مشکلاتیه که تول داخل وایی بخوام مارک خودمون رو بزنیم نمیخورن استقبال نمیشه من همین پیرانو الان هفته پیش یکی از مشتری ها که شمال شهر هم مغازه داره اومد از من خرید اوده 100 تا شد دونه بیس و هزار تا من دارم اینجا میفوشم ولی اونجا هلواشی ای چیزی بوده سی این پیرانو داره اونجا میفوش بیا سیصد هزار تا باز تا میخواین لباس بخرید جیب مامان بابا ها آره رو خالی کنین پاشین برین بالاشهر که حتماً حتماً برین اون پاساژ فلان که از بهمان مغازه که جنسشو از خود ایتالیا براش میفرستن لباس برند اصل بخرین حالا چریدین که اون لباسی که شما براش 300 هزار تومن پول دل دلتون خوشه مثلا برند پولو یا اصله در از برند برادران نمیدونم چی چیز اده اصل فلان جاییه توی تولیدی اطراف جمهوری دوخته شده قیمت واقعاً 20 تا 25 هزار تومن تمام شد رفت حال ما وظیفه بود اطلاع رسانی بکنیم دیگه دیگه شما اگه حس بهتری دارین که 300 هزار تومن بدیم بالا پیرن 25 هزار تومنی بپوشی نشتی خودتون میدیم والا سلام سلام علیکم رفتی الان از کجا دارم برات وایس میذارم کجایی؟ از کجا و چتر بریدی پایین. با خواستم بدونی که من یکی از خاص ترین شنونده ها آقای از صداظ معلم به سمت قلعه دیزینم. هوا افتابی جمعه است، خیلی هوا خوبه. جاد خیلی خالیه. حسام هم. از مالزی ولی الان از دیزین قربونت. قربونه خودت حسام از مالزی که رفتی دیزین رفتید و داری اسکی می‌کنی و الای که کوفت چیز یعنی خوش بگذره خیلی بهت و جای ما خالی کن دیگه با این باد و سر و صدا و اینا همون رو سی اچ بودی دیگه اول بکنیم با چت بریدی از هواپیما داریم میای پایین صدای باد میاد به هر حال مرسی که به یاد ما بودی خوش بگذره اون حالشو ببر بهمن ما همون که گفتم این هفته میخواییم در مورد شعار و شعار زدگی با باتون صحبت کنیم امروز در اولین روز برنامه میخوایم مروری بر استفاده های برون مرزی از شعار های داشته باشیم که البته فقط برای شکستن دل دشمنان کاربرد داره و هنوز موردی مشاهده نشده که مثلا کشوری بر اثر شعار های ما دچار مشکل و دردسر و چالش خاصی شده باشه بجز همون دل شکستگی پس لازمه همین ابتدای برنامه یک سلام مخصوص داشته باشیم خدمت اون عزیزانی که به کوری چشم جانکری که چند وقت پیش گفته بود شعار مرگ بر آمریکا برای هیچ کس شغل ایجاد نمی‌کنه از صدق سر همین شعار مرگ بر آمریکا تو جمهوری اسلامی به آلاف و علوفی رسیدن و دارن نون میخورن و علوفی هم میخورن و دیگه برون جونشون گوش بشه به تنشون دیگه ما که بخیل نیستیم ها یه برنامه اومده از توش بیرون دیگه آقا خدا بده برکت احمر او yes. س oh, yes. بریم سراغ هواشناسی ببینیم که چه خبر بوده این هفته آب و هوا سالن جون جونی هفته دیگه بیم سالانه باشند. ایش امروز هوا تهران صاف هفته با 17 درجه سانتیگراد. اما فردا با. سالانه بارش از قابی کشور وارد میشه که دوشنبه تهران احتمال زیاد بارونی هستش. برای اکثر وسایل هم 10 درجه کاشید. دما رو پیش می الان تهران در سطح این حالت 7 درجه سانتیگراده که feels like دو درجه هست. این دما برای دوشنبه زیر سف خواهد رفت. چهارشنبه هم از کشور خارج شد. هامد استم از تهران. بح بح. ممنونم حامد جان خیلی ممنون خیلی هم عالی و جمعجور و کوتاه مختصر مفید فقط در مورد آلودگی هوای امروز تهران اشاره نکردین تهرانی های عزیز چه خبر خوبین؟ چرا باز اینجوری شدیه هوا با تهران امروز باز شنیدیم متاسفانه هواش زیر خط تنفس بود و حالا ابتا واقعا دیگه کاری از دست ما که بر نمیاد غیر از نگرانی و اینکه که بگیم اونایی که میتونن ترجی خب یه خبر مهم من برای گیلانی ها و کلن شمالی های عزیز که این یک دو روزه حسابی دارن با هوای نیمه تابستونی و گاهی حتی حدود مثلا سی درجه و اینا دارن حالی به حولی اینه که خیلی هم حالی به حولی نباشین دیگه تگی همین چند روز آینده نه 10 درجه نه 15 درجه که با تا 20 درجه هم ممکنه دما بیاد پایین و اگه لباس رو بردین گذاشین تو گنجه به خیال اینکه دیگه زمستون تموم شده و نفتالینم گذشین لا بلاش بیت نزنه برین آقا برین تا بونه گرفته درش بیارین بزنین تو هفته بوش بپره به زودی همین روزا لازمتون میشه بله هوا خنک میشه خلاص از ما گفتم بودا حالا چم گوش نده دو روز دیگه میام حالتونو بپرسم ببین که گفتم. جمبه، جمبه، جمبه، جمبه، جمبه، جمبه، جمبه، جمبه. اخ, گشنمه او امروز گشنمه آقا ما تو این رادیو خداوکیلی خاصن شنبه ی شنبه ها که این خارجی ها تحتیلن گاهی شده قضاهایی رو میخوریم به عنوان مجازات هم اگه به محکومین به اعدام بدن دوام نمیارن زیرش اصلا یه به خدای دروغ بگم یه وضعیت آقا الان مثلا همین امروز نمی کنی من چی خوردم اصلا من ولش مرسا تو بگو نهار چی خوردی امروز بالا من نمیدونی یه مایه سیاهی بود توش برنج داشت فکر کنم یه زرم یه چیزای تنگیش زده بودن. دریایی بود دیدین. سعيد چی خوردی تو؟ والله منم یه ماه زردی خوردن توش نمی گوشت گراز آفریقایی بود چی بود با نون تست و علف استوایی بفرمایید بفرمایید علی الیجان تو چی خوردی؟ والله منم اینا یکی بچه‌ها خوردن که اصلا نتونستم تحمل کنم فقط هرس و جوش خوردم. بله اصلا نشه بیا <تصفح> بچه‌ها بردش آوردیم اینجا از این غذا بهشون میدیم. امی؟ امی؟ از سوء تغذیه از دست نران خوبه والله به خدا دوستان عزیزان خانم و آقایون بدانید و آگاه باشید درد اصلی بچاریت به طور کلی و همیشگی و البته درد اصلی خود ما اینجا چیه؟ بچا چیه؟ گشنگی، گشنگی، بله. اینه <تصفیق> که ما تصمیم گرفتیم یه کاری بکنیم. چی کار؟ عرض میکنم از همین امشب تا آخر اسفند که دیگه پس تا تمومیشون می‌گیریم میریم لای باقالی و و اینا 22 تا برنامه مونده دیگه. شما زحمت بکشین از هر جایی که هستین با ما تماس بگیرین و از غذا برامون بگین یه خورده. یه خورده از غذاهاتون برامون با لهجه محلی خودتون اصلا از غذای خوشمزهی که تو منطقه خودتون وجود داره برامون تعریف کنید بعد از رستوران های اطراف یا رستوران هایی که میدونین مثلا اون غذایی که شما دوست دارین و که میخوایی معرفی کنین خیلی خوب درست میکنن بعد از مزه غذای بگین از رنگش، از لعابش، روغنش حال شما هم بد شده من که دلزعفه شدم اصلا کلا ما خدازاری داریم دیگه یه جورایی <تصفيق> پس چی شد بچا شما یه بار بگینیم یه بار ملکه ذهن دوستان شنونده بشه لطفا بگین چی گفتی؟ بله لطفا از هر جای ایران کسید اولا از غذای محلی شهر و دیار خودتون بگین یعنی بگین اسم غذای مورد علاقتون چیه بله خیلی کوتاه بگین چه درست میشه اگه رستوران هم دورو براتون هست که اون غذا رو داره که خیلی خوشمزه درستش میکنه بگین کجاست و در صورت امکان وقتی که تماس گرفتین با لحجه منطقه خودتون حرف بزنین که ما قشنگ تعم قضایی بره زیر دندونمون بله حالا سود این کار چیه؟ هیچی فقط ما خدازاری داریم <تصفح> <نصفح> <تصفح> <تصفح> نه. همین که نه این جن... حالا اون که داریم اون که هیچ ولی از قدیم گفتن آقا وصفل ایش نصفل ایش. شما تعریف میکنین ما و بربچه ها همه سیر میشین ما خودکشی میکنید نه خودکشی <تصفيق> نکنید <نه خودخشی تصفيق> دیگه خود سیر نشه. میشیم دیگه نسو نيمه یه جای به یه جایمون میرسه دیگه آقا میخوایم اصلا غذاهای جدید یاد بگیریم هر هفته یه غذا رو درست کنیم اینجا اد گوشنگی نمیریم میخوام بدیم به دست بچه‌ها هر کی یه غذا رو هر هفته درست کنه اصلا میخوام آقا سلسله برنامه غذایی تاسیس کنیم تو این 22 برنامه پس وردهای باقی مونده لیگ آشپزی خوبه آقا بچا لیگ آشپزی رو بنداز خوبه خوبه, خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. اسمشام میذاریم چی استیک استیک نه ها استیج نه نه استیک <تصفيق> <تصفيق> بچه های خودمونم هم قراره همینجا خودمون میشین پروژیوسر های غذا بعد بهتون رهی میدن بچه ها آقا من نمیدونم دیگه غذا باشه کوف باشه حرفش باشه هرچی باشه دیگه ببینیم چه میکنید دیگه چجوری میتونین تماس بگیرین تلفن های ما دو سفت چار و بیست و دو یازده و سی و سه و سد و و و دو سفت و بیست 226-21-79-39 برای اونهایی که داخل ایران هستن بله. و البته از طریق اپلیکیشن آیویس راژیو پسفرده که میتونین نصب کنین و از اون طریق صداتون رو برای ما بفرسین بله میتونین حتی صداتون رو برامون ایمیل هم بکنین یا از طریق شماره تلگرام برنامه راژیو پسفرده برامون بفرسین که شمارهش هست 20420 602 33 803 707 پس چی شد؟ این منتظریم دیگه از فردا منتظریم برای غذا نمایی شما تماس بگیرید از غذاهای خوشمزه بگین با لحجه محلی همونجایی که هستیم. منتظری خالی <متصفيق> جور رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو خالی جون قربونت ام خیرونه تم صدقه فلاگردونی تم عاجی شه سر قلونی تم رفینه رفیق شی برونتم خالی جون چند ماه داری خالی کر نمیزایی خالی چند ماه داری خالی کر نمیزایی میذاییم دیگه همین روزا احتمالاً از گشنگی میذاییم دیگه به خدا حالا شما تماس بگیرید از اون قضاهایی که میگین ما احتمالاً از خوشمزگی و اینا همطوری میذاییم بریم سراغ موضوع امروز و برنامه امروز که شعار زدگی در عرصه سیاست خارجی انواع مشت محکم و آپرکات زیر چانه قدرت های جهانی بیانی شماره شماره 978 بدانید و آگاه باشید که اگر روزی پنجاه نوبت در تمامی رسانه ها و همایش ها و تجمعه ها مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بگویید یک تار موک از هیچ کجای آمریکا و اسرائیل کنده نخواهد شد هیچ کلی هم از جیب شما بابت برگزاری همایش و مراسم و حق و حقوق دادن به شعاردهندگان حرفهی می رود پس این همه سال آرزوی مرگ کردید لاقل یک مدتی هم به صورت آزمایشی کنید. اما چه فایده که در نهایت باز هم بعضیها نان خود را در مرگ بر آمریکا تیلید کرده و خورندگانند امزال جمعی از این همه مرگ بر این و مرگ بر اون گفتن خسته شده ها و انقدر شعار داده که شعار دونشون پر شده ها و یه مدت به مرخصی نیاز داشته های رادیو هر بر دادا, دادا, دادا, دادا وقت این دحیه فجر لعنتی برای من و خانوادم اومد نداشته حالا من نمیخواهم خرافاتی باشم ولی از اول این دحیه فجر مم. اول اتفاقی که افتاد برای من این بود که کارمو از دست دادم یعنی خودم اومدم بیرون ولی الانی جورایی افسردم اصلا این ده روز تموم شد راحت چی ای بابا ای بابا بفرما سیگار ای خیلی ممنونم. حالا شما که با این هم از زندگی میکشیدی دیگه اون سیگارو نکشیدی گذاقال. حالا منم میذارم به واردا چقدری که برای کاری کسی نیاز داشت رو تغذیه میدیم بیگر. بچا کاری چیزی کسی دست نداره، کاری سراغ نداری، کسی کاری سراغ نداره، هیچ سراغ شما داری. کار داریم دنبال مارش ایشون هم دنبال اینجا میاد چقدر دنبال کار میکردند. نه با با این بند خدا کارشو از دست داده حالا به هر حال شما تو زندگی باشه و منشی حسابدار. نگهداری آشپزی آره آخ آخ آخ آخ آشپزی آره میخواییم میخواییم شما دفعه بعد که تماس کردی یک مورد از هر جایی که هستی یک مورد غذای محلی تو برای ما با لحجه خودت توصیف کن ببینیم چی میشه دیگیم میسپوییم دست پروڈیوسرا ببینیم شاید قبولتون کردن خیلی مهمونم اما معمولا هر سال یه هایی در مورد قدرت نظامی یا مثلا چه میدونم قدرت اقتصادی کشورهای جهان انجام میشه و یه فهرستی هر سال از قدرتمندترین کشورهای جهان از همه نظر از نظر تجهیزات و جای نظامی وضعیت اقتصادی این منتشر میشن که اصولا آمریکا و چینو، یکی یک دو تا کشور دیگه هم معمولا هر سال در صدر این است قرار دارم حالا اینو گفتم که چی بگم؟ خواستم بگم اگه ارزیابی های مشابهی در زمینه قدرت شعاری کشورام انجام می و کشورهای دنیا از این نظر یعنی از نظر قدرت شعاری رتبه بندی می شدن به احتمال خیلی زیاد ایران در جهان یک قدرت محسوب می و احتمالاً در رتبه دوم هم مثل کشوری مثل کره شمالی شاید قرار می گرفت بعد از انقلاب ایران ما خوشبختانه با تکیه و دانش و امکانات بومی خودمون تونستیم به چنان پیشرفت‌هایی در زمینه تولید و شعار برسیم که در این عرصه عملاً در جهان بدون رقیب شدیم. شعارهای تولیدی ما معمولاً چند تا هستن؟ یک دست شعارهای کشتار جمعیان مثل مگ برای آمریکا و مگ بر اسرائیل و کلاً مگ بر یک کشور دیگه که این شعارها کلاً تر و خشک و با هم هدف قرار میدن، همه رو می یه سری شوارها هستن مثل مشت محکم زدن و نمیدونم این صحبت ها که بیشتر بر زهره چش گرفتن و کل کل و اینا به کار میرن یه سری شعارهای دیگه هم هستن اثرات روانی و تغییر برای دشمن دارن مثل چی؟ مثل همین فلان کشور هیچ غلطی نمیتواند بکند و بهمان کشور را زیر پا میگذاریم و اون یکی کشور سگهار منطقه است و اینا خوشبختان جمهوری اسلامی در عرصه شعار به چنان قابلیت هایی دست پیدا کرده که دشمناش حتی فکر مقابله و رقابت در این ارسه رو هم نمتوان به خودشون راه بدن یعنی شما خواهدتون قضاوت کنی در برابر این زراتخانی شعاری ایران کشوری مثل آمریکا که خودش هم مثلا اول قدرت میدونه فوق فوقش میاد میگه ایران محور شرارته وای وای وای وای, وای. چقدر زایه شدیم ما؟ مثلا که چی؟ والا یعنی در کل میخوام بگم انقدر شعار ما جلویم و بقیه کشورها از ما عقبن که اصلا به حساب نمیان بله ما اینیم ما اینیم لحاظه شعاری و شعارزدگی عرض میکنم بله ماشین مشتی دلی ارزون و بیمو ماشین مشتی دلی نه داره نه سندلی ندیم ندیما. که ما بطه مدرسه ای بودیم این دعیف از رو اینا که می اومد چی عروسی بابامون بود <تصفح> ندونه شما خوشحال بودیم که روپامون بند نبودیم با این بطه هم کلاسی پول تو زیبی رو می زاشتیم. رو هم می رفتیم سی کاغذ ششی و از این کاغذ رنگی منگی ها و اینا می خریدیم. می رفتیم رو سر و کلم تا در و دیوار کلاس و چی چه تی؟ دعیه فضره دا؟ زونه با. آره با این بطه های الان آقل ماقل کارشون نرسته دیگه او مثل ما بلا نسبت شما تی ماگول نیستن چه <تصفيق> والا یکی نیست بگه آخه بچه تو باد پارچه سیاه بزنی به نرو دیوار از رنگی میزنی زونه؟ ایول بل آره آره آبدی بخور بخورم برو بود یعنی تی آبدی زونم براتون بگه محسن از مثلا از آشرشته بدم می اومد بچه بودم زان آره دیگه اقلمون کم بود دیگه منطقه این دعیفت که می زنگ تفریه های آشرشتهی یعنی من یکی حاضر بودم کل ندیگو یه سره برم بالا به زون شما عبزی. یعنی از یه طرف یکی یه کاسه آش میداد دستمون از یه طرف دیگم هم نازمه بالا شروع می کرد شعار دادن چه تکرار کنیم سه میدونم توپ تانک فش فشه دوبر ما چیز چیزه این نه این مال استادیوم بود میگفتی توب تانک مسلسل دیگر اثر ندارد و حالا ما یه کاسه آش تو دستمون یه قاشوق آشم تو دهنمون با شهاره رو میدادیم دیگه <تصفح> ولی چی حال میداد دیگه با این هم میزدیم تو سر و کله هم و میخوردیم ببین که هم آدم بدن خوشمزه به نظر میاد دیگه عبزی. زونم؟ آش؟ آره و الان که عبزیم هم حواسم موسه آش هم کردیم و شد زا دا؟ آش داریم اگه شما عبزی ضدی میگی شو ای بلا ما چه تصادفی الان یعنی امرو ای داری میبری و سه خوارت نه نه دیگه نه زونو شما زونو نمیشه این داری. نه با دست شما درد نکنه یعنی ضدی تو اون مخته قابلمه آشه؟ ما کاش یه چیز دیگر خدا میخواستیم آبزی ببینین این طرف غذای ماست هست اینو ما دیگه آوردیم درم داره دیگه آره حالا برید تو همین دیگه نوکلت زیاد زیاد نریزا اوپس. نه ناداغ و پیازاغ هم که تی اصل ما هست دیگه <تصفح> نه با سی خدا خیرت بده. آشده فضل ما مامزور شد پستیگه ایمان یک دونه سبز میزنم روش یک آبی میبافم قرمز و زرد و قهبی بطه گلابی میبافم قالی کرمون میبافم با تار جونم زیر پشبند از یارمی را اون نقشه زندگانی من، رنگش مثل عشق آسمانی من، یک دونه سبز میزنم روشه آبی می بافم، قرمز و دوکه دیی، بلندی کلو بل بی می کاف. خانم و اون دختر خانم‌ها و پسران، این هفته از تجربیات و خاطرات خودتون از شعار دادن بگین برامون. خودتون چقدر اهل شعار دادن هستین؟ و یا چقدر شعارها روی زندگیتون تاثیر گذاشتن؟ حالا این ها چه می‌دونم، میخواد شعار سیاسی یا انتخاباتی باشه یا اصلا شعارهای فرهنگی مثل ترویج و تبلیغ حجاب یا حتی شعارهای ورزشی برای تشویق تیمتون یا از بین بردن روحیه تیم حریف فرق نمیکنه دیگه به هر حال این هفته میخوایم خاطرات و تجربیات شعاری خودتون رو با ما در میون بذارید و بگین آیا به نظرتون این شعارها تأثیری هم در زندگی واقعی داره یا نداره خیلی داره بهتون خوش میگذره همش دست جمعی و دوره هم نشستین پیغام می برنامه برگزار میکنین کیک میخوریم. این بله. دوره همین آقا این خوبه یعنی من چه بخیل باشم اصلا اصلا معلومه آره اینجوری مام دلوم میگیره دیگه پس حالا که اینجوری دور هم هستین زود هم دست به کار بشین برنامه جاییتون راه بندازین که ما خیلی هم دیگه حسودی نکنیم ممنونتون میشم سپیدم از تهران قربونت سپید جان دیگه جای شما هم خالیو شما بیا خوب دوره همیم دیگه خوش میگذره شما بپیوند برنامه جدیدم چشم بذارین حالا این, یکی... این یکیو بزرگش کردیم تموم بره حالا بعد دیگه رو هم رو هم یه دفعه همیچ با هم که نمیشه که. خب بچه ها چه خبر حالا که دور همیم همه با هم و اینا چه خبر از کامنت ها بله آقای محسن مول گفتن جالب هر وقت که فجر میشه و این سرودای انقلابی رو میشتم انقدر یاد امامم نمیفتم که یاد شرشرها میافتم البته آره منظورشون از شرشر همون کاغذ رنگی بوده آره از علی پرسیدم یه لغت مشهدیه گفتیم حالا یه لغت مشهدی جدیدم یاد بگیریم یاد بگیریم یاد بگیریم تا وقت ما استفاده کنیم استفاده میکنه حالا از قزای مشهدی هم بعد از قزای هم بعد برام بگید با خوشپزی شو آره آره بله بعد با اینکه موضوع برنامه شعار زدگی هم بودم فرشید جان کلی کامنت شعاری گرفتیم در مورد خودت البته خانم آنیتا جلالی شعار داده بودن که فرشید فرشید شعار ماست پس فردا افتخار ماست بله خانم پریزاد نوشته بودن که سرور, ه... سرور هرچی موجیه، استاد فرشید منافیه اینقدر این قافیه هاش درست با هم جور نکردن خیلی به خدا لطف کردی راضی به زحمتون نبودیم به تا خدا خون در رگ ماز فرشید توی پاس حالا اون این که نه ولی حالا ببینیم خون تا کی تو رگای شما هست بله آقای اسماعیل هم نوشتن سرور هر چی تاجی فرشیده منافیه برد. برد. من کی من کی گفتم من تاجیم من پرسپولیسی بودم یه زمانی یادم نمیاد الان چه احساسی داشتی شواردادن اینا واسط میگم اون احساسی که ما این همه اه... سال شواردادیم یه احساس غرور دارم الان <تصفيق> احساس غرور دارم واقعا از اینکه این که ای شعارا رو دادن با. خیلی ممنونم از شعارها بازم کامنت هست آره آقای نوید یرازی گفتن که یاد بهترین و خاطر انگیسترین شعاری افتادم که خیلی های ما دادیم یا حسین میر حسین فارسی جان اینجا جا داره یاد بکنیم از تمام کسایی که بعد از اتفاقات هشت تن به حبس و حصر دادن ولی به هیچ عنوان از حرفشون بر نگشتن. بله خیلی ممنونم ازت، ممنونم از کامنت شما و ممنونم از سعید و علی بریم سراغ ادامه برنامه اما بالاخره امروز ظاهرا مشخص شده که شورای نگهبان یه تعداد دیگه ای رو تایید صلاعیت کرده تا تنور انتخابات یه نموره همچین گرم بشه ولی خب این نکته هم جالبه که وسط این همه میاییم و این همه بزن و به کوب و میاییم میاییم و نمنونم میریم میریم و رد صلاعیت و این حرف زودان آقای محمدرضا باهنر که در عرصه نمایندگی مجلس رکورددار هستن بعد از هفت دور نمایندگی یعنی 28 سال که توی مجلس بوده امسال توی یک اقدامی عجیب توی انتخابات مجلس اصلا شرکت نکرده و برای همین خبرنگار صدا و سیما رفته سراغ ایشون ببین علت چی بوده ایشون اینجوری جواب دادن بعضی از مسئولین که کشور ما اصلا مخه بیمه مسئولیتی مرسن دیگه خلاصه از اون مسئولیت جدا نمیشن مگر اینکه دیگه حضرت اسرائیل به کمک برسه و اینقا بله در حالی که بالاخر باید این گردش نخبگان باید مستمر باشه بله این گردش نخبگان که الان آقای باهنر خودشون هم با این فرمایش در کمال فروتنی نخبه به حساب آوردن بعد چی باشه باید مستمر باشه یعنی چی که بعضیا دور از جون به این قدرت میچسن از باهنر یاد بگیرین هفت دوره تقریبا پشت سر همین یعنی 28 سال نماینده مجلس بوده بعد یهو نمیدونم یادش افتاده بقیه نخبه هم هستن برای همین هم دیگه امسال خودش ثبت نام نکرده که یه نخبه دیگه جاش بره مجلس مدیونی اگه فکر کنین ایشون برای ریاست جمهوری دوره بعد مثلا چون این کاری کرده ها حالا کاری نداریم ایشون در ادامه یه گوریزی هم به میزان حقوق و دریافتی نماینده های مجلس زدن که در نوع خودش این هم خوب شنیدنیه حالا حقوق نماینده ها دیگه من فکر میکنم اون حقوقی که ثابت به خودش میدن حدود مثلا 4 4.5 میلیون هستش حالا به اضافه اون اون مزایا و اینها مای مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان میده برای حزینه های نمایندگی یعنی خدا بده برکت 4 4.5 که حقوق میگیرن 5 میلیون 10 میلیون هم بابت خزینه های نمایندگیه و میشه چقد ما حدودا پان 15 میلیون دیگه خدا بده برکت تازه این چیه این کفشه داستان حق و زحمه و شیرینی و دلالی و کارچاخ و بیزینس و اینور و اونور و آغازاده و این و یکی و و اینا و اونا و اینا جداست یعنی نمایند مجلس بکنم مای 100 ملیون تو جیبش نره اصلا صرف نداره براش حزینه تبلیغاتی تبلیغات انتخاباتی بکنه اینه که اینجا اهمیت تصمیم آقای با هنر و اهمیت افخهای پیش که باید شد در شرکت در انتخابات انصراف بدن. و میدون رو به بقیه یه نخبه ها واگذار کنن مشخص میشه یعنی خسته نباشی دلاور خدا قوت پهلوون نگرانی ما از خطاهی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشند خب، هامران ملک موتی، سلام سلام فرسی جان، سلام همگی خوب این روزا بازار فیلم و سینما رفتن و اینا به خاطر جشور فیلم فجر داغه چه خبر باز تو این چند روز؟ امروز پنجمین روز جشنواره بود فرشجام فیلم محمود دهنمک یعنی رسوایی دو امروز خیلی حاشیه داشت اولا زیاد استقبال نشون چون بعدش هم چند دقیقه از شروع فیلم نگذشته بود که نصف بیشتر آدما به نشانه اعتراض سالن رو ترک کردن دهنمک قضیه فعلا خیلی عصبانی نشست خبری فیلم انجام نشد امروز 5 تا فیلم تا حالا رتبه اری مردومی رو به دست آوردن امروز یا تا, یا تا امروز روز... تا امروز یا امروز فقط منظورتون که تا امروز تا امروز ها تا... اوکی تا امروز فیلم ابد و یک روز ساخته سعید روستایی اجدا وارد می شود مانی حقیقی، بادیگارد خاتمی کیا، بارکد مصطفی کیایی و ایستاده در قبار محمدحسین مهددیان البته ایستاده در قبار بیشترین ارا رو به دست آورده اگه موافق باشی بخش از ساز این فیلمو رو بشنویم من خاصن اعدامو می کنم به یه منطقه‌ای مثلا ما هم یه گروه 17 نشان تهران رفتیم سال 59 ما همین روزها مثلا مسئول سپاه کی فرمانده سپاه کی این کی اون کی گفتن برادر احمد برادر احمد برادر احمد اونجا هی از احمد میگفتن ما میگفتم شرف ما زندگی ما اسلامیت ما در شرایط فعلی واقعی به آزادسازی اونوشه بخش استودیو فیلم ایستاده در قبار ساخت محمد حسین مهدوییان رو شنیدیم فردا چه فیلمی نمایش داده میشه کامرام فردا شش فیلم تو کاخ جشنباره ها به نمایش در میاد فیلم حارت لغمال خالدی سینما نیمکرد محمد رحمانیان دختر رضا میرکریمی خماری داروش قزبانی مالاری پردید و پردیدز شهروازی و خانه ایران اولقاسم طالبی که البته تو بخش جنبیه اینم اضافه کنم توی این چند روز فیلم نرگس آبداری جدید این کارش به اسم نفس خیلی صحبتشه که یکی از کاندیداهای های دریافت سیم بلورین باشه. بسیار خوب فیلم نرگس آبیار گفتین؟ یعنی کارگردانش خانم بله نرگس بله. آبیار هست بله نرگس آبیار بله بسیار خوب ممنونم ازت اه... کامران عزیز باید خدافزی میکنیم تا فردا و بریم به اتفاق تیتراج همین فیلم نفس رو که ازش اسما ماوردی که خانندش حجت اشرف است به اتفاق بشنویم آهنگساز این کارم به روز سفاریانه تا فردا خودو نگهدار ت اما نمی‌دونی ما هر دو درگیره احساسی ما هر دو در اما همدیگه رو از چن نمی‌شناسی No سلام بیسکوسی شب به شب را زمینه وحشت از رجزخوانی ها و اخیر فرماندهان نظامی ایران و عربستان با مروری بر سرخط مهمترین خبرها امروز و امشب آغاز مینمایید. اعلام آمادگی بهرین پس از عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه و نظر کارشناسان که این کشورهای عربی ظاهرا خیلی دلشون برای جنگ و خونریزی تنگ شده بود منتظر بهانه بودن فقط وارد شدن روزانه 190 میلیون دلار زرر به ایران به دلیل تحریم ها و توصیه ناظران به معظم له که اگه ما جای شما بودیم با به آف دادن یه همچین دستگلای میرفتیم افق گم میشدیم پشت سرمونم نگاه نمی و بازداشته کوتاه مدت محمد نورزاد و محمد ملکی به دلیل تطریب دادان مرابسم اشغال جمع کنی در تهران و نظر فعالان عرصه اشغال که خب حتماً معمولین نظرشونی موده که اشغال واسه ریختن نجمع کردن مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروح خبرها با همکارم بلی بلی با سلام بنامه به های رسیده بیست و پنج درصد از نامزدهای صلاحیت شده شورای نگهبان پس از اعتراز تعید صلاحیت شدند بر همین اساس و با توجه به ردصلاحیتهای گستردهای که در مراحل قبلی صورت گرفته بود یکی از فعالان عرصه ای انتخابات کشور زمین تمجید از تیزی اعضای شورای نگهبان ای آقای میکروفون تلا تیز اینجا درسته ببینم ببینم تیزی آه. درست که هست ولی تو بگو تیز مغزی که درست‌تر باشه, بله. با باشه دیگه بله تیز مغزی مطمئن نشوام بله بخون دیگه بلبل درست درسته بله با عرض پوز یکی از فعالان عرصه انتخابات کشور ضمن تمجید از تیز مغزی از شورای نگهبان گفت این شورا با تیزی خاص ه ببخشید تیزمغزی خاصی در مرحله اول رد صلیت ها چونان فتن گران و نفوذی ها را رد صلاحیت کرد که حتی اگر 25 درصد دیگر از این افراد هم. تایید صلاحیت شوند برای نظام مشکل خاصی از نظر نفوز ایجاد نخواهد شد وی در پایان از همه اعضای این شورا به خاطر اینکه فداکارانه خودشان را در برابر نفووزگاه های دشمنانداخته راه ورود آنها را بستند تقدیر و تشکر به آورد پایان اخبار. باید پیش بیایم. کیلومتر 55. وای. وای. وای. وای. وای. وای. وای. وای. وای. وای. وای. وای. وای. وای. ما در جریان وای. وای. وای. وای. وای. وای. وای. بفرماید. بله منم سلام عرض می کنم ها بر... در خدمتی شما هستم. این با توجه به اینکه در ایام مبارک دهی فجر هستیم ب... بفرمایید که نیروی انتظامی برای این ایام چه تدابیری را اندیشیده است؟ ببینید نیروی انتظامی خب همیشه وظیفه و ماموریتش برقراری نظم سا در این دهه مبارکه ای... هم ما نظم را برقرار میکنیم دیگه آقا. خب یعنی شما تون پایگاه پیام‌های گهاتون هواپیمای بادی امامی ب... چیزی ندارین سران؟ همینجوری خوشک و خالی برگذرش کردید ببینید اتفاقا توسطی همکارانی من یک عدد هواپیمایی خیلی زیبا مجهزی با به عنوانی نمادی هواپیمای امام راهل توی حیات قرار داده شده بود که متاسفانه همین امروز بنده دیدم که بادش خالی شده عجب بادی کجاش دقیقا خالی شده بود سرهنگ این باد نوکش کابینی خلبان کلا یه وری شده بوده امام که اوکی بود دیگه باجی چیزی ازش خالی نشده بود نه نه خب امام که نبودن تو این هواف در حقیقت نمادی از اون حادثه بزرگ بودست خب بل... پس سرهنگ دیگه جمعش میکنین هواپیما هر دیگه چی با زایه است خیه مقداری ببینید نه دیگه با توجه به که هنوز چند روزی دیگه از ایامی دهی فج باقی است بنده به همه نیروهای خودم دستور دادم شروع کنن به باد کردنی ما با غندیرم گذاشتم بالا سرشون حواسش باشد یه وقت کسی کم باد نکنه ها خوبه خوبه آبا. اون غندی به در همین باد زدنم هم خب سرطان شنیدیم که گشت ارشادتونم دمی در جشواد فج حسابی دارن جلیل میدن. بله خب همکارانی من در گشتی ارشاد برای حفصی شونات همه جا حاضرن. بله میشه بفرمایید که تا حالا با چه افرادی برخورد شده توسط این عزیزان؟ بله بله عرض کنم همکارانی من این افتخارو داشتن که سه نفر از بازیگرای خیلی معتبر قدیمی رو ببرن تو ون ازشون تهادم گیرن. آه بح بح بح بح بار خب دیگه دیگه همچنین این ایزان تونستن هفت نفر از خانومهای جوانی بازیگر رو وادار کنه که روسری رو بکشن جلو و قول بدن که دیگه عقب نره عجب بل. خب دیگه چیکارا کردن سر آ یه چند موردی دیگه هم بودست که خب, خب. مثلا کارگردانی نمایشی نمایش فیلم داشته منتها چون با یه خانومی بوده که معلوم نبود استشون خانومشونه یا خوده کرده آخو. خانمی کسی دیگه‌ای است همکاره در درخواستی مدرکی از ازدواج کردن که هم راشون نبوده است تا با ارفاق دیگه فقط راشون ندادن تو جشواره یعنی چی یعنی نذاشین طرف بره تو نمایش فیلم خودش بله. بعد میگی ارفاق هم کردی ب... نه دیگه ببینید ای. خوب ایشون بس باز داشت می شده. ای. دیگه حالا چون ایامی درم مبارکه با... فجر است تا هم کارانی من موردی د قرارشون دادن اصلا باشین واقعا همه سلامت من الان یه سوال خیلی مهم دارم بفرمایید بفرمایید آره ببین مثلا بل... یه خانم بازیگر چند روز دیگه برنده سیمرغ بلورین جشواره میشه خب بله خب مبارکشون باشه بله بعد این سی مرگشو میگیریم میاد از جلوی معمولین شما رد بشه خب چیز منطقه خب بیدید چون دستش بنده یهو و مثلا بات میزنه شالش میفته اینو شما باش برخود میکنی خب فرقی کند فرق نمی کند که سی مرغ باشه فرق نمیکنه کندی قانون باست رایت بشه آه یعنی سی مرغ بلورین باید با دو کیلو بادمجون تخمی فرقی نداره که دست با. آدم باشه دیگه آقای علیز این... فرقی نداره قانون میگه حجاب اجباری هسه باید بشه سرنگ خود مرغ چی یعنی اونم باید حجاب رو رایت کنه به نظر شما چی میگوی آقا جون شما سیمرغ که آدم نیست ولی مرغ دیگه ها. اونم نه یکی نه دو تا سی تا سرنگ اه. ببینید من هی. احساس میکنم دوباره شما حالت خوب نیست من اینجا آقا جون ترک میکنم هی. بنده دیگه سرنگ ببیند به نظر من اصلا ببید. سی مرغ بلورین رو بکنین چلاق بلورین این مشکل مرغی جشوره هم حل بشه آقای عزیز بنده اینجا رو ترک میکنم چا با... شما دوباره داری حرفای نامربوطی غیر قانونی میزنه تو رسانه سرهنگ. این ویس کجا میری؟ باقایز بلورین هم خوبه آقا جو... خیلی جواب میدی یعنی چی چی باقا خجالت داره؟ سرهنگ. من دیگه اینجا با نمیستم آقا من رف فرشی جان سلام, سلام رغیمم میدونم می پیشگوییت خوبه بعد من حافظ خوبی ندارم مم. لطف کن بگو جام زهر قبلی چقدر بعد اثر کرد این جام زهره چقدر طول میکشه اثر کنه قربونت برم موظبه خودت باش خداحافظ خیلی ممنونم ولی این دومی که خب جام زهر نبود این جامش نرمه چقد احرمانه بود ولی این اینجالا چقدر طول میکشه اثر کنه دیگه از همه الان عوارزش شروع شده دیگه فلن روی شوره نگهبان ها در عرصه رد سلاحیت خب خیلی قدرتمند و با سلابت شدن و اینا دیگه بعدش هم خدا بزرگ بله ممنون اون قدیم ما امروز داریم یعنی این هفته راجوبه شعار و شوهر اون قدیمایی که از مهم‌ترین دلایلی که بچه ها قبل از رفتن سر کلاس با تو سر و گرما صف وامی این بود که جد آباد و کشورهای دیگر رو بیارن جلو چشه‌شون سر صفی همیشه از بر آمریکا و بر اسرائیل شروع می‌شد همچنین به اتفاقات روز مگبر انگلیس مگبر فرانسه آلمان اینا هم می‌گفتیم کشورا رو درو می‌کردیم می جلو همیشه هم نازم یا هر کسی که با میکروفون اون بالا وایستاده بود چک میکرد ببینی صدای ما آیا اونقدر بلند بوده که به کاخ سفید برسه یا نه و اگه حس میکرد مثلا یکم میداریم شل شوار میدیم دوباره از اول با شوار میداریم علاقه مایه میذاشیم خدا وکیلی گلو رو جر واجر میکردیم یعنی از اون احماق تهمون شوار میداریم صدا برسه به امریکا فکر کن بعد چه دیگه باور دیگه موقع البته اگه از ما میپرسیدن از انگلیس کجاست آمریکا کجاست اینا اصلا نمیدونستیم فقط میدونستیم که مثلا تا نگی مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و اونا اینجور چیزا و اونا صدامونو نشنوند سر کلاس نمیتونیم بریم بشینیم یعنی این کلن نسلمان نگاهش به شعار دادن یه چیزی در حد رو پوش مدرسه پوشیدن و کیف و کتاب آوردن و درس خوندن و اینا بود فکر میکردیم مدرسه علاوه بر اینکه محلی برای درس خوندن، محلی برای شعار دادن علی دیگه هم هست خب برای همین هم از امروز این همه لحظه تولید شعار پیشرفت کردیم و مصرف سرانه شعارمون اینقدر در کشور بالاست دیگه میدونین کار چون ای بوده لامصب از, از رده های سنی پایین شروع شده خوشبختانه جوابم داده حالا این هفته در مورد زوایه گسترده شعار در همه ی با هم بیشتر صحبت کنیم تا شما هم پی به اقتدار کشورمون در این عرصه ببریم. فری برز غریب سلام سلام سلام به همهگی فرشی جان چه خبر تو این چند روزی که نبودین فریبورس یکی از خبرهای مهم فرشید برپایی یک کمپین کمک برای تحمیل حضیله بیمارستان سارا عبدالملکی اصلی ورزشکارا و هنرمندا بوده کلاغم خبر رو بعد از برنامه هفته پیش ما و وقصوصا پخش حرفای مادر سارا کلی‌ها تو این چند روز گذشته به تکاپو افتادن برای کمک به این دختر مظلوم ملی‌پوش. بله یادمه ما در مورد بیمه درمانی ملی پوش هم یادم صحبت کردیم فریدورس. اتفاقا آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت هم دو سه روز پیش رفته بود بیمارستان ملاقات سارا و جالبه که ایشون هم نمیدونسته که این ملی پوش ورزش ایران تحت پوشش بیمه نیست. اگه موافقی حرفای آقای وزیر رو بشنوی. بشنوی. اطلاع نداشتم نذاشتم را چه بخواید هنوزم سخت باور کردنش که قهرمانای ملی ما اگر یه چالهسه ای براشون پیش میاد هزینه های درمانشون رو هم خودشون بایستی متقبل بشه از این جهت اومدم برای پرسی و اگر کاری لازم هست که حتما هست براشون انجام بده بله خب خوشحالیم که برنامه ما و البته خب کلا رسانه و سایر رسانه ها خیلی قد تاثیر داشته فشار آورده واسه سارا هم سلامتی داریم دیگه چه خبر پری فرشید بیروز خبر اومد که بازی تدارکاتی تیم فوتبال ایران و نروژ لفت شد و مسئولان گفته بودن یه تیم اروپایی جایگزین میشه اما امروز خبر اومده زیمبابوه از ایران واسه بازی دوت کرده حالا آخرش مجبور نشیم به جزائر مکارونی و جیمبابوه برای بازی تدارکاتی بریم خوبه والا خب البته اونجا نسبال مومنین آشنا داره فکر کنم بازی نشه حالا جالبه ون فوتبال زیین تو دعوت نامش فرشید نوشته علاوه بر چیزهای معبولی مثلا تقبل هزینه بلیط رفت و برگشت و هزینه های هتل و چیزهای دیگه به طور خاص گفته جابجایی جایی بازی کنای تیم ایران حتما با اتوبوس کلیدار انجام میشه. آخه آخه خ خدا رو شکر ما واقعا واقعا الان نگران بودیم فقط برای همین این مسئله که دیگه این مثلا برطرف شد واقعا دستشون در نحل شد ممنونم ازتطری بله. برج با خلداافظی می تا فردا. تا فردا خدا نگه هرچی پاس فردا آقا ما نفهمیدیم بالاخره این شعارهای مرگ بر عمر باد و له شود و بترکد و اینایی که تو مملکت مامز نقل و نباد نزار کشورهای دیگه میشن چی ان بعد باد ویران مطلکن آرزو ان چی انی نابل اخره آخه حاجا حاج احمد خاتمی که یکی از فوش دهنده های با کیفیت نظام هستن گفته بودن که امیر مؤمنان علی علیه السلام دید اصحابش با اصحاب معاویه فحش میدادن مولا نهیشون کرد فرمود انی اکره و انتکون و سبابین بدن میاد که شما اهل فحش و اهل دشنام باشید اه خیلی خوبه که این حرفا پس انی آجا قایی مرگ بر امریکا و این حکمشون چیه این وسط؟ مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل اعلام موزعه خود آه. قرآن اینو داره نباید کسی این اعلام ها رو تفسیر به دشنام کند و بگوید اینها که میگوین دشنام نه خودش این را دارن هرگز این دشنام نیست. آ از این لحاظ پس آمریکا و اسرائیلنا از قبل تو قرآن خب سفارش داده شده که بهشون فشم دادین اوکیه. منتها لازم میشه بزنین اعلام موزه که وقت اخلاق اسلامی مورد نظره مثلا امثال حاج آقا تامی هم زیر سوال نره. یه حکایتی هست میگن یه مورچهه داشته میرفته بعد یه کلاقه میاد به مورچه میگه ببین تو فحش دادی به من بعد بخورمت بعد مورچه میگه که داداش آخه من دارم اینجا کار خودم رو میکنم دونه خودمو هم میکنم ای دقیقم کنی اصلا من همیشه جلو رو فقط می‌بینم اصلا سرم نمی‌چرخه بالا رو بخوام ببینم نمیتونم اصلا بدونم ببینم شما هستی نیستی فوشم کجا بود که به تو بدم آخه کلاقه که برای اولین بار خواسته بود یه مثلا یه مرچه رو از قبل از خوردن به صورت منطقی توضیح کنه مرچه رو زد یه لقمه چپ کرد تصمیم گرفت از این به بعدم مثل سابق بدون استدلال مرچه شو بخوره چه کاری آخه استدلال چی لوچنده حالا ما کاری نداریم که کلاغ مورچه می‌خوره نمی‌خوره اه، اه، چه میدونم بهش میسازه نمیسازه در مسئل که مناقشه نیست که همه اینا رو گفتیم که بگیم هاجاقا کل چیز ببخشید هاجاقا خاتمین شما فوشتو بده دیگه آه،, آه چرا پای قرآن و حضرت علی اینا اینا رو میکشی وسط راحت باش فوشتو بده ولی من هنوز واقعا نفهمیدم آخرش کلاق مورچه میخوره یا نمیخوره شما راه نمایی من ممنون میشم باقا امروز، روزنامه جامع جمع به نقل از رئیس سازمان صدا و سیما امروز تیتر زده بود که عملیات روانی چند لایه علیه صدا و سیما یه لایهشی که ما می‌دونیم حامد بهداد چند روز پیش صدا و سیمال توی نشست خبری شز گذاشت کنار لایه های دیگرش هم خبر داریم و بعد هم بگید. روزنامه رویش ملت به نقل از آیات الله امامی کاشانی امروز تیتر زده بود که به کسی رای دهید که به ولی فقیه ایمان داشته باشد خب مبارک باشه یه اصل دیگه هم به اصول دین اضافه شد ایمان به ولی فقیه. امشب هم تموم شدیم. رسول یونان گفته فقط تاریکی می داند ماه چقدر روشن است فقط خاک میداند داند دست آب چقدر مهربان معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه نمی فقط من می دانم تو چقدر زیبایی دو چشم مسته می به بردارام حشیاران تو خوابالو دنبودن دغلازدست بی دار او نغلازدست بی دار او نصیحگوی را از من نگه لاسه بوسهشتان را چه میترسانی از باران چه میترسانی از باران گير اون شهر را شو برو سي ها له من فرسا بگو خواش نمیگیرم به شب از درن یارا علا ای باد شب گیری بگویان ما حز ل را تازادی یا خلقیت نه غمر رو